اسم استاد را که به زبان آورد چندشم شد استاد مزهر یحس و بیاستعدادی من شده بود هرچه بر اهمیت و بزرگواری استاد مکان دلالت داشت کوفتی و توستری خوردگی من را بیشتر می کرد خاطر گستسته که از آن نخستی ملاقات در حافظه من باقی مانده بود شک گرفت و من او را هنگامی که پشت میز تحریرش نشست و کارهایم را تماشا کرد به چشم خود دیدم خدا داد رو کرد به من و پرسید میشناسیدش؟ گفتم یک بار با او روبرو شدم ولی خوب نمیشناسمش. گفت مهری چرا نامه را بلند نمیخوانی؟ فقط در آخرش چند کلمه خصوصی درباره تو نوشته آنها را نمیخوام بخوانی اولش اینجاست نامه را از دست دخترک گرفت و گفت بیا از اینجا بخوان شما هم گوش بدهید باز نامه را به دست او داد و دختر معیوس چنین شروع کرد. من آنچه را برای تو باید بکنم کردم و امیدی ندارم که بالاخره به نتیجهای برسد. رئیس شهبانی از تو خیلی حساب می برد. تو را به حضرت اشرف تریبل معرفی کردند. چه کرده ای که آنقدر بدنام شده ای؟ اما معیوس نباش. اگر بخوایی چیزی عذاب در بیایی نباید از میدان در بروی ملا شدن چه آسان آدم شدن چه مشکل سب کن تا این رئیس شهربانی عوض بشود به شرط اینکه که تو جرأت خود را نبازی. میگویند تمام تصویرها و کاریکاتورهایی که در پاریس در رساله ها روزنامه های فارسی حتی در مجلات فرانسه درباره باره ایران منتشر می شود کار توست خدا نکند خدا داد نامه را تمام کند گفت خیلی استاده است خداداد خندید و من معنای خنده او را نفهمیدم مهبانو بقیه نامه را خواند. اهمیت نده زندگی همین است گاهی باید خورد حالا نوبت کتک خوردن توست دعوا اشکنک دارد سرشکستنک دارد ای طویل بود اما خداداد داد عجول بود و شاید هم وقت نداشت تا آخرش رو گوش بدهد رفت روزنامه هایی را که نخ پیچ کرده بود باز کرد روی صندلی نشست و شروع به خواندن یکی از آنها کرد مهبانو نامه را میخواند و من گوش میدادم رئیس شهبانی داستانهای تو را نقل میکرد میگفت هر هفته به تمام دانشجویانی که در فرانسه هستند یک روزنامه به اسم پیکار میرسد این روزنامه در برلین منتشر می شود و تو آن را ما بین جوانان ایران در فرانسه تقسیم میکنی. خداداد به ساعتش نگاه کرد و نگذاش که نام استاد تا آخر خانده شود از مهربانو پرسید نهار چه داریم؟ به رستوران که نمی برویم چون پول نداریم باید همینجا چیزی خورد چیزی باشد که مهمانمان هم بتواند بخورد من هم به ساعت خود نگاه کردم نزدیک یک بعد از ظهر بود سهمیت او در من تأثیر خود را کرد پیش از آن که بتواند بر استدارای که به او دست داده بود خلا کند و قیافه آرامی بگیرد و جواب بگوید من پیش دستی کردم و گفتم اگر اجازه بدهید من من شما را دعوت می کنم و برویم با هم در رستوران نهار بخوریم خداداد گفت فکر بسیار خوبی است. اما مهمانون مخالف بود و گفت: نه، تو نمی غذای رستوران رو بخوری. مگر دکتر قدقا نکرده گوش نخوری خانوم هیچ در فکر خودش نیست من نمیگذارم بروی رستوران. خداداد و من هر دومان خندهمان گرفت. مهری جان اوقاتت تخ نشود حق با توست خوب بگذار ببینم چه داریم؟ روزنامه را رو انداخت روی زمین.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 حاضرید با فقیر بیچه را سر کنید شاد و خندان جواب دادم برای سر ما هم زیاد است راستی من نیمده بودم اینجا نهار بخورم اما دیگر نمیتوانم دعوت شما را رد کنم خدا داد رو کرد به مهبانه و گفت پس بلنش به سابخانه بگو برامان چای و شیر درست کند از این گذشته کارم داریم و تا ساعت سه تمام روزنامه را آدرس نمیسی کنیم ما به پست برسونیم مال ایران باید در روزنامه های کیهان ماتن رفاف کنیم. مهبان از اتاق بیرون رفت. همین که با او تنها ماندم پرسیدم این چه روزنامه است که به ایران میفرستید؟ فرستید؟ قیافه زده ای به خود گرفت و گفت مگر شما روزنامه پیکار را ندیده حقیقتش این است که من این روزنامه را دیده بودم. گاهی به آدس من هم می فرستادن. یادم میآید که یک بار از طرف سفارت بخشنامه به تمام دانشجویان ایرانی رسید، که هر وقت چه این روزنامه ای رسید، باز نکرده آن را فوری به سفارت تحویل دهند و این باعث خنده دانشجویان شد و هرکس روزنامه پیکار را تا وقت نیده بود، از دوستش مطالبه میکرد. گفتم: "نه ندیدم." فعالیت این پسر پسر خوشصورت برای من تازگی داشت.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 روزنامه را به من داد بخالم و سر مطالب آن مدتی درباره استبدادی که در ایران هوگ فرماس برای من حکایت کرد. وقتی حرف میزد تمام بدنش میلرزید. چشمهایش گرد و فروزان می شد. هر هرچند لحظه چنگ میاندخت و ظلف رام نشدننش را از پیشانیش رد میکرد و به عقب میزد. یک دستش را در جیبش میکرد و با دست دیگرش، میکوشید به کلماتی که از دهانش خارج میشود صورت و هیکل بدهد پنج انگشت دست راستش دایما در هوا به شکلهای گوناگون درمیآمد گاهی روی صندلی که نشسته بود با یک حرکت شدید خودش را پرت میکرد به پشتی صندلی گویی از دور بهتر میتوانست مرا تحت نفوذ درآورد پا روی پا میانداخت آن وقت ملایمتر میشد ناگهان از جا میجست هر دو دستش را روی صندلی فشار می داد و بدنش را در هوا معلق نگه می و حرف می زد. این جوان یک پارچه آتش و یک بسته غضب بود من چنان خود را به او نزدیک و بیرو درواسی و صیومی حس می کردم که تا آن روز برای من بی سابقه بود آهنگ صدای برنده و تیزش تنین می اندخ. مثل چکشی که به فلز بخورد این همه جوش و خروش و قلیان هرگز در کسی ندیده بودم مدتی درباره اوضاع ایران گفتگو کرد از جنایتی که مرتکب می شوند از فساد و رشوه خاری حرف زد از ثروتی که به دست بچه های اعیان امثال من از کشور خارج می شود از بیگناهانی که در زندان میروند از رجالی که فدای هوا و حوث مالپرستی شاه میشوند، از اشایه بیمانی و تزویر و ریا از نفوذ انگلیسی ها که تمام این رجال خیم شبازی را به بازی می گیرند. ناگهان کمی مکس میکرد و اشترای به زندگی من میکرد. مثلا میگفت آن وقت من و شما در پالیس ویل میگردیم. پول این مردم را میدوزیم و دور میریزیم. هیچ تا به حال فکر کرده اید که زندگی من و شما از کجا می میشود؟ من ساکت بودم و واقعا گاهی شرمندگی حس میکردم. گویی در تمام این جنایات من هم شریک و مسئولیت دارم.